بیمی و مطرب که زیر تاق سپهر به این ترانه تم از دل به در تواند گل مراد تو آنگه نقاب و چاید که خدمتش چون نسیم سهر تواند کرد به ازم مرحله عشق پیش قدمی که سودها کنیر این سفر تواند کرد بیا که چاره زوغ حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توان کرد تو که از ترا طبیعت نمی روی بیرون کجا به توی طریقت گذار توانی کرد یه بیتش یادم رفت بخونم جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی قبا ره به نشان تا نظر توانی کرد تو که از طبیعت منی روی بیرون کجا به طریقت گذر توانی کرد گدائیت در میخانه طرف اکسیرید گر این عمل بکنی خواد زر توانی کرد دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی تو شام خند زنان هر که سر توانی کرد ولی تو طالب معشوق و جامعه نیخواهی تمع مدار که کاری دگر توانی کرد گر این نصیحت شاهانه بشنبی حافظ به شاهراه حقیقت سفر توانی کرد عرض کنم که غزل غزل ارفانیست و شاید بهتر بود من روال کار از دستم تر رفته بهتر بود که اول بگم اینکه از رفقا بخونه بعد خودم بخونم بعد. و بعد چون رفاقه بخونم بهتر و این یکی اینکه دیگه ادستم در رفت تقییه بعد میگیم که رفاقه بخونم بعد من خودم میخونم که اینجا ضبط بشه و بعد شد رفاقه قزل قزل است بدون هیچ شک و راجب جام جمع چون در اون چیز در اون سالها دل تلاوی جام جمعه از ما میکرد یعنی قضال قبلی بحث مفصل کردیم حالا برای دوستان مثل آقای گیب دوست عزیزی بنده که جدل رودن بنده یک کوچیک مختصری میگم در اصطلاح تصوف جام جمع عبارت است از دل عارف و معتقدند که اگر کسی به ریاضت بنشیند و کار بکنه و اون دستوراتی بهش میدن روشنبینی پیدا میکنه و در دلش تصورات میاد و مسائلی میاد که او برای کسانگی نیست و او میتونه ببینه این اشاره به, اشاره به یه حدیثی هم هست قبلا گفتم اتقو فراست المؤمن و این اینکه او چشم یعنی رو به نور الله میگه از فراست از تیز هوشی مؤمن بپریزید برای که او با نور خدا نظر میکنه و این نور خدا وقتی شامل کسی بشه این دلش روشن میشه و بسیاری از مسائل در او منعکس میشه اینه که میگوید که سر جام جمع جام جم رو قبلا گفتیم اینادی که تفصیل شد دوستان باید از رفقهای قبلی که اصلا جام کیخسترو بوده نه جام جم جام کیخسترو جام جهانبین بوده که هر حادثه که میخواستن در روز نوروز پادشاه جام شراب میخورده در اون جام و در جام نگاه میکرده اون چه میخواسته در اون جام نشون می‌داده. شکل جام رو به طوری که فردوسی بحث می‌کنه که در داستان بیژن و منیژه هم هست می بحث شبیه به این جامعه چهلکلی هست که جامایی که دورش دعاهو نوشتن و دعاخونده است و هست و الان هم هنوز مثلا توش آب می‌کنن می‌ریزن دور سر مردم برای اینکه جادویشون باطل بشه یا نمیدونم دعاخوندن ازی کارا یه چیزی شبیه اون است و میگهว่า که تصویرهای تمام صورت‌های فلکی صورت برج‌ها همش در اوروسکاپ هم هست اینا همه درش کشیده شده بوده و یه چیزی فردوسی تصویری از این جام جام که خسروب میده بعدها جام و جم چون با هم تناسب لفظی داشتن جام که خسروب اوشتش تبدیل میشه به جام جم و اولین کسی که میگه جام جم دل عارفه سنائی غزنویست یه یقین دان که جام جم دل توست اینم که حافظ میگه که سالها دل طلب جهانجام از ما میکرد من چه خود داش زیکان تمنون کرد اون روشنایی دل رو میخواد برای که همه دل رو دارن منتهیاب برای اینکه این دل روشن بشه و تحت تعلیمات صوفیه قرار بگیرن و کارهایی بکنن اگر اون کارا بکنن بکنن وقت دلشون تبدیل میشه به جام جمع این است که میگه که وقتی میتوانی به سر جام جم نگاه بکنی برای که این جام رو همه داشتن ولی کسان معینی فقط میتونستن سر او درک درد کنن میگه به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهله بستر توانی کهله به عنی سرم است و اصلا به عنی چیز خیلی نایاب و کمیاب و چیز خیلی خیلی گرانبه است رازی وقتی که الکل رو از تختیر شراب به دست آورد اسمش رو به به همین دلیل در انگلیسی اسمش هست الکل اچ داره بیس در فرانسه که اچ ندارن یعنی ه میگن میگن الکل و دو تا او می نویسن و در فرانسل من ندیدم هیچ هیچ لغت دیگر ندیدم که با دوتا او بیمیسن همین یکیست فقط الکوال بیمیسن الکل برای اینکه یعنی چیز نایاب سرم هم مقدار خیلی کمی میدون که میسازن خیلی باید نرم باشه جنسش باید خوب باشه برای اینکه میشن تو چشم و چشم عزیزترین عضو این است که خیلی کم و کمگاو و گرانبه هاست کوهل بسر یعنی سرمه چشم میگه وقتی به سر جامجام میتونی نظر بکنی که بتوانی خاک می کده رو کوهل بسر می کده کجاست؟ جایی که می درش می پسن. کده به معنی خانه است بودکده یعنی بودخانه می کده یعنی میخانه به قیاس آتش کده که بوده و به قیاس او دانش رو هم قازه اول اولین کسی که دانش کده رو صافت مرموم با بود مجلهی داشت اسم مجلهش رو گوشته او دانش کده بعدها مدرسه عالی هم اسم رو گوشتن دانش کرد. و هر حال کده یعنی خانه و یا در آخر کلمه میاد اگه در آخر کلمه بیاد به همین صورت کده است اگه در اول کلمه بیاد چه کد کد خدا یعنی صاحب خانه مردی که زن میگیره که اتاق تازه باید بهش بدن برای اینکه میدونه قدیم هنوز هم در دهات ایران همینجوره زن و بچه و پدر و مادر خانواده توی یه اتاق زندگی میکنن وقتی که دختر خواست شوهر بکنه یا پسر زم بگیره دختر گیر خونه شوهر که سر رو هم یه اتاق جداش میدن که با زنش بره تو اون اتاق ما میگنکتخدار شد، یعنی صاحب یه اتاق و یه خونه جدا شد برای خودش. اون خانم رو هم میگن کتبانو شد یعنی بانوی اون خانه شد کودا کت و کتبانو. عرف کنم که تو دو های نومبایی یه اتاقکی بود که آرد رو، آرد به مقدار زیاد یه خرواد رو خرواد آرد که می آدن، خالی می کردن اون تو. اون اتاق رو شکردن کته، کته همون کده است و بعد در اونجا این آرد رو علاق می و می برای اینکه پخت معین بشه توی کیساهای مثلا 5 کلویی، ده کیلویی می که معلوم بشه هر روزی چقدر آرد پخت میکنن و چقدر میون و چقدر پودش برگرده اون جای آردن گفتم کته همچنین در خونه های سکراخی اون گوشه زیر زمین نوابید کته زغال کته زغال یعنی جای جای زغال اون لغت برای اینکه دیگه جای, جای جای بیچ صبحی نمونه اون لغت برنجا فضی که بهش میگوین کته اون لغت محلی بازندر نیست لغت اصلی فارسی نیست خوب می کده یعنی میخانه یعنی جایی که می می نوشن ولی گفتیم این غزل عرفانی و در اصطلاح ستوپیانه می به معنی اون حال جذبه الهی است. می به معنی اون حالت گوشایش و چیزی که بعد از ریاضت و بعد از اجرای دستورات نه ها اون حالی که برای آدم حاصل میشه اون حال سرخوشی رو اون رو بهش میگن می و حافظ خیلی اینجو این, این میروساق یا بده دهجا میزان شراب روحانی تا دمی بیاسا یمزیم هجاب جسمانی شراب روحانی که آب انگور نیست دیگه یا مثلا میگه مستی عشق نیست در سر تو رو که تو مست آب انگور اشارات بسیار داره می کشیم از قده لاله شراب موهوم چشم بد دور که بی متر بومی برو این اینو چسبیدن و گفتن بنابراین هرچی می تو دیوان حافظ آمده مراد اصطلاح صوفیانه است. این درست حافظ هم می رو به اصطلاح صوفیانه به این معنی به کار برده هم می رو درست به معنی آب انگور رو کار برده برای یه جا میگه که روز می نخور می خوردن روز دل آدم سیاه می کنی وقت می خوردن شب خب اگه جذب الهی باشه که روز شب نداره که می‌گه روز در کسب هنر کوشت، چند غزل بعد میاد که می خوردن روز دلشون آینه در زنگ ظلام اندازد آن زمان وقت می‌ست صبح فروغ است که چرخ گرد خرگاه افق پرده شام اندازد بنابراین پیداست که مراد این است و تمام عرف‌های بزرگ گاهی گفتند خود صناعی که جز استوفیان بدون شک که خیلی بزرگ بوده و کسی که خیلی به گردن تصفیف ایران هر داره و اواخر عمرش انقدر ترک دنیا کرده بود که مردی به اون جلالات قدر پا به رهنه اصلا با این حال در جوانی میگه میگه بهر سر شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسخا بنابراین سریع هم میگه که من سراب بود و اتفاقا اگر نیازمایند و نکنند یک قهضایی در معرفتشون نقصه همونطوری که اگر اگر اسیر او بشن و مداوم به مصرف کردن این مادن رو اون اونم درست نیست باید همین همین اندازه و هم مثل, مثل خیام،, خیام این همه صحبت میزنه راجب می ولی لابد چون میدونی که اگه آدمی قدم میگو سار باشه که شب مثل کشتی ویلنگرد کش بشه و مجد بشه و بگیرن رو دوش بیارن در خونش بنزن این حکیم ها رو نمیشه که اون کارهایی که نمیتونه بکنه بنابراین این این تصور که فکر کنید که این داهم صبح که از چشم کرده مشغول بوده به نوشیدن تا آخر شب این درست نیست ولی خب به هر حال چیز هم کرده دیده کشکی که اینجا میکده در اینجا که خاک میکده پول بسر کرد این میکده در حقیقت خانقاه و دستگاه تحضیلیت تیگره میگه اگر میخواهی که دلت به صورت جام جمع در بیاد باید خاک میکده رو سرمه چشمت کنی یعنی کاملا و صد درصد تحت تعلیمات پیر خرار بگیری برای اینکه باز در قصائل نصبف گفتن که مرید باید کلمه یت بین یدی القساط مثل مرده ای که زیر دست مرده شده مرده از خودش هیچ اراده ای نداره دستو بلند میکنن بلند میشه ولش نکنن میفته ازینرش میکنن برمی کرده از اون طرفش میکنن باز هیچ اراده ای از خود میگه مرید اگه بخواد به جایی برسه اولش میتونه هر آزمایش میخواد پیرو بکنه قبل از اینکه سر سپرده اما وقتی که اومد و گفت آقا شما تربیت من رو به عهده بگیرید و راهنمایی منو من رو به عهده بگیرید دیگه فرد رو چون و بکنید این از که خاکمه که در کوه بسر بکنی یعنی باید کاملاً و صد در صد تحت تعلیم تیر قرار بگیرید تا به اون مرحله برسید مباشد بیمه و مطره اشاره ای به همون حالته مباشد بیمه و مطره که زیر طاق سپه یعنی در این دنیا به این ترانه قم از دل به در طوان ترانه اصلا به معنی دختر جوان اندک ساله و خیلی ببخشید این کلمه با طوله که برای بچه بعضی از حیوانات میگن ارتباط داره و مراد اون تراوت و تازگی است که اینا دارن و زیبایی که هنوزم میگن مثلا آب و رنگ داره این آب ترانه که میگن یعنی کسی که هنوز آب و رنگ جوانی داره نظامی در حرف فیکرش میگه که هر نصفت دوری یعنی دخترش صحر نکرده هر نصفت دوری دوری میصفت یعنی هر دختری یه حرفی میزد هر ترانه, ترانه ای می میگفت یعنی باز هر دختر جوانی سرودی میخوند گفتن به معنی آواز کنده میتونید این بیت رو یادداشت کنید میگه هر نصفته دوری دوری میسو در هر کره. در داستان گنباد سیاه هر نصفته دوری دوری میسو هر ترانه ترانهی میگفت ترانه اول معنی دختر جوان پرانه دوم به عنیه و آهن. و چیز, در چیز شمس قیص در کتاب علموجم میگوید که این اسم رودکی و درست روی روبایی روبایی رو در زبان فارسیش میگن ترانه. میگه چون علت به وجود آمدن این روبایی پسر جوان بسیار تر و تازه زیبایی بود که خیلی قشنگی هم نظر میکنه که البته افسانه است برای اینکه قبل از میگتی هم ما روبایی داریم ولی اون قصه قصه‌ی بسیار زیبایی است میگه چون این پسر بسیار تر و تازه زیبا موجب شد که این روبایی به وجود بیاد این است که اسمش ترانه هران ترانه من این است و روبایی بسیار بسیار هم به اصطلاح مورد علاقه بوده است شرح مفصلی صاحبه علموجم میده که بسیار شیچه اسمت بسیار زنان پانه که به سنگ بی اقتی خورد در نتیجه شنیدن ترانه یعنی پاشون لکس و چه و چه و چه خیلی به تفسیل حرفی زنه در حال ترانه اصلا یعنی رباییست آهنگای خیلی خوب به ربایی میصافتن و اینجا به این ترانه قمز دل در طبانی کرد یعنی با این آهنگایی این سکرود من به به زیر طاق و به این ترانه قم از دلده در طواه میکرد <تصفيق> هر نسخته دوری دوری میسو هر ترانه ترانه این گفت داستان گنبد سیاه در حفظ و میگفت یعنی آواز میکن گفتن یکی از معانی گفتن آواز خوندن ترانه می میگفت یعنی ترانه رو به آواز میکن. گل مراد تو آنگه نقاب و چاید که خدمتش شو نسیم سهر در آن گل گل سرخه اینو چند بار گفتیم بارها گفتیم گل در صدی آفز ونید گل سرخ. به طور کلی هم معتقد بودند درست هم هست که قنچه گل در سهرگاهان باز میشه یعنی پیش از برامدن آفتاب برک های گل از هم باز میشه و خونچه به صورت گل دارد و اینجوری که ملاحظه میکنید قدما معتقد که وزیدن اون نسیم سرگاه در شکفت شدن گل تأثیر داره حالا داره یا نداره من نمیدونم ولی این رو میدونم که سهر هوا به اونج لطافت خوش نیست یعنی یک ساعتی از در طول شبان روز که همون درست یکی دو ساعت یعنی پیش از روشن شدن هواست در حقیقت نزدن پیش از روشن شدن هوا که هوا اگر سرد باشه به آخرین درجه سردیش میرسه و اگر گرم باشه به آخرین درجه لطافت خودش در اون ساعت سهار صبح بسرم و معتقدم که گل اون وقت باز میشه این نسیم سهر اشاره به اوست. میگه که گل مراد تو وقتی باز میشه این به زبان شاهرانه مخواده که وقتی به مراد میرسی گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید از اون گونچه مثلی که تو نقابی وقتی باز میشه مثلی که باز بازگرده که تو خودت خدمت بکنی به اون گل مثل نسیم سفر خدمت بکنی برای مرادت یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری بکنید که به مرادت نزدیک میشی و او اطاعت دستورات تیره گول تو آنگه نقاب و چایت که خدمتش تو نسیم استهر طوام کرد به ازم مرحله عشق پیشنه قدمی این مرحله ایست که فیلن مرحله طلب دنائی غزنوی یک قصیده بسیار خشنگ داره طلب ای, طلب, ای آش... طلب یا طلب یا طلب یا طلب یکیش برحل. یکش طلب یکیش طلبی طلب ای این کار طلب اینی توان خودکفتار طلب خیلی خیلی هست و این است که صوفی دنبال مقصد خودش ده و اونچه بهش میدن؟ حتی بیش از اون سعی بکنی که به عظم مرحله عشق کیش نه قدمی پیش قدم بشو چرا؟ که سوتها کنی در این سفر تو می کرد اگر بتونی این سفر رو بکنی سفر عشق رو سوتهای بسیار خواهی کرد در تصوف می که در راه سیر و سلود آفات های بسیار هست. یکی از اون آفات های این است که آدم گرفتار خود میشه فکر میکنه بعد از اینکه خیلی پریز کرد و کار کرد و خدمت کرد و فوکراف خدمات کرد، اما هرچی گفت بعد یا وش دلش میگه فو خب بحث من چه آدم خود می‌شود؟ چه حد کار، چه حد زحمت چه چه حد کار کرده دیگه این نکرده. همین، این خود تمام اون از این بود. یا مثلا فرض کنید که شیطان، میگه شیطان گاهی، این باعث میشه که یه چیزایی به نظرش کشف و کرامت بیاد، یه چیزایی میبینید پس بگی من رسیدم در حالت درست این مقدمه ی گمراهی به این چیز میگوید که غزالی یکی از چیزا دیگه ریاست. ریا رو میگوید که خب ریا وارد از این است که آدم یه کاری رو برای رضای خلق میکنی به رضای خدا یعنی مثلا طول به فقیر جلو مردم بده که بگن بحوه آدم دست است. یا نمازش رو طول بده که بگن چقدر آدم مومنیست یا خسیسه ولی مهمونی های شاهانه بده که بگن به این, این سرش از خودش کنیست این برای خلقی که این کار می‌کنه اینو بهش میگن ریا و ریا رو بهش میگن شرک میگن شرک خفیص شریک برای خدا قائل شدن برای اینکه کارهایی که آدم فقط باید برای رضای خدا بکنه این کارا بیاد برای رضای خلق بکنه اینو بهش میکنن ریا و یکی از بزرگترین ایپاس که در هر جامعه هم در هر مسلکی در هر مذهبی در مرام سیاسی در کار دولت در هر جا اگر ریا رخنه کرد این کار پاسده اصلا خواهد مرده غزدالی میگه که خب این ریا خیلی خب اینیز که آدم برای خاطر خلق کار نکنه برای خاطر خدا کار کنه اما تصور نکنید که به این سادگیه که من دو دوکره میگم مفیر میگه گاهی ریا از رد پای مورچه در شب تار روی سنگ سخت پیدا کردنش مشکل ده. یعنی تو مدت هاست خیار می‌کنی برای رضای خدا داری کار می‌کنی در حالی که توی ریا می‌کنی و خودت نمی‌کنی حال موارد چی میگه میکن؟ میگه که به آقای میاد و تمام رو می‌ذاره برای خدمت بخرد هرچی پیده میکنه بده به مردم، نمی‌م چی بکنه به درد مردم برسه، به گرفتاری مردم برسه وقتش سرفی نکنه همه این کار نمی‌کنه طول بخواد و فقیر بده، یعواشتی بده یک کسی نفهمه، نبنه، همه‌ی همه‌ی اون‌کسه‌ی اما اگر ببینه که یک کسی دیگری هم این کار میکنه داره این خدمتو میکنه، اگه تعیی که دلش دلش چهکین بشه مالا می‌شه این دیام کن که اون باید یک کسی دیگر این کار میکنه خوشحال بشه نه باید خودش، چهکین یا میگه این همه‌ی این کار رو میکشه. اگه یه وقت میاد توی مجلسی اگه توقع داشته باشه که خب این مردم با قدر من بتونم لعقل جای بالا رو بدم جلو فرمان بلند شد همچی که تو دلش میکرد که جلو فرمان بلند شن، این ریاض و واقعا کنچکاوی هایی کرده در این کار در کتاب احیا علوم دینش که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده در قرن هفتم اصلا این از نظر روانی یه تحقیقات یه کاره کرده که خوش از سر آدم میپرد یعنی همین الان هم واقعا آدم فهم این براش حتی مشکلی که این مغز این آدم و این ذهن این آدم چجور نفوذ میکرده تو این مسئله برای ارز کنم که در راه عشق در راه تصفف در راه رسیدن مقصود خطرهای بسیار بسیار زیاد هست این هم که میگه که حتماً باید تیر تو رو دستگیری کنه میگه برای این است که گمراه میشید قطع این مرحله بی همراهی خزر مکن ظلمات هست به ترس از خطر گمراه نظیر این خیلی داره حتی یه بیت اوانهی هم هست میگه مرا تو در خرابات هر چند سکندر زمان اینا درست هنگ مطلب با آه با رو لفتن بگم دیگه آدم میسید که لخت خودش به ازم مرحله عشق پیش نه قدمی که سوتا کنی این سفر توانی شد بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد در بعضی نظر خواست به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد در صورت یکیه این است که الان من نمیگفتن یا اهل نظر باید فیض به تو برسونن اگر نه کار درست نمیشه چاره زوق حضور یعنی این که گرک بکنی این لذتی که در حضور خداوند هستی و لذتی که در این راه تصویمتانی میری برای اینکه درک بکنید بچشید ذوق یعنی چشیدن حس چشایی روش بکرم زائقه در همه زبونام این ذوق یعنی تمیز نیکوبت و سلیغه خوب داشتن با فاکلمی زائقه یکی همش در فرانسا هم در هم طوره و در فارسی و عربی زوق هم و چشیدن هم ونی صیه داشتن میگه که تو برای اینکه لذت اون حالت های و در تصور و نظم پیدا کردن کارت بتونی بکنی تنها راهش این است که اهل نظر یعنی کسانی که پیش از تو رسیدن به اونجا و دیدن این مراحل رو به تو پیز بدن بیا که چاره زبق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کن جمال یار ندارد نقاب و پرگیر ولی قبار رهب نشان تا نظر توانی چیز میگه که ساید دیوان شعرش با این بیت میگه در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو. پرده یعنی پرده ساز در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو آلم پرست از تو خالی جایی یعنی از شدت آشکاری تنهایی یه قذلی هم سعدی داره عین همین میگه آسکین بر روی و نقشی در میان افکنده ای. خیشتن پنهان و شوری در جهان افکندی. همچنان در گنچه ای واشوب استیلاوی اشت در نهاق بلگل پریادخان افکنده هیچ نقاشت نمی بیند که نکی بکشد وان که دیگ از حیرتش کلک از بنان افکندی. این میکشد این دریخ هم نیکشد کفکنده ای اوصاف خیش در زبان عام و خازان را زبان نفکنده ای. قادری بر زیر هر هرچه فرمای رواز هنجه زور از ما با نتوان نفکنده برحال یا خود حافظم حافظم سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که واده فروش از خوزه بنابراین میگه که یار پرده ای نداره چشم بینا فقط میخواهد تو باید چشم تو تربیت بکنی باید قوار راه رو بنشونی باز یه چارط داره سوء در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو نوای تو عالم پر است از تو خالی است جا. در ذهن میگه که این عالم عالم کثرت می‌گام کنید 5 میلیارد آدم 10 میلیارد درآمد هندات زیاده اما وجود یکی بیشتر نیست یعنی این سلسله بالاخره هستی یکی حالا هر چی شما جای بنابراین بسیاری کسان چشمشون میفته به این کسرت یاد اون برد. اون وحدت از یاد صاحب میگه که آن به دل نزدیک تو دور از چش آن به دل نزدیک و دور از چشم بفرمه، بفرمه تو در بکنی بفرمه سلام سلام حالی شمی شما آقای دریا و اندرگی روز تعییزه میگه آن به دل نزدیک و دور از چشم که از لطف گوهر در جهان است و فروم از جهان پیداستیست داته آن به دل نزدیک و دور از چشم که از لطف گوهر در جهان است و فروم از جهان پیداستیست دیده یوسف شناسان در قبار کسرت است. خیلی آدم یوسف واسهش نمتونه تشکیز دید. دیده یوسف شناسان در قبار کسرت است ورنه یوسف در میان کاروان پیداستیست گرچه پیدا و نهان با هم نمیگردند جمع آنکه پنهان است و پیدا در جهان پیداستیست با. این همین مضمونه که ذات حق رو فقط چشم رو باید درست کنی، اون سرجاش هست نقاب و فرده نداره جمال یار ندارد نقاب و فرده ولی قدار رهبه نشان تا نظر توان کرد بارها و بارها این چیزو گفته یه جایی دیگه میگه عاشق که شد عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای خواج درد نیست اگر نه طبیب هست. این همینه جمال یار ندارد نقاب و فرده ولی خوبار رهبه تا نظر قوامی کرد تو که سرای طبیعت نمیروی بیرون ویرون همه همه هم و قم و فکر و خیالت برای پروردن وجود اون برای این تن دائم خوب راحت بخوابه راحت بخوره خوشش میگذره میگه از این بیرون نمیری از این طبیعت تو که از تراوی طبیعت نمیری بیرون کجا رو توی طریقت گذر طوام میشه طریقت اولش اولش میگه آدم از سر حواس های نفسانی برخت میگه تو که اصلی نفسانی اد تو چطور راه طریقت میتونی بری ناز پرورد تن این همین به آزفرورد تنه اوم نبارد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد آدم به آزفرورده یه ویتامین خورده یه بده بخورم دو تا نمیرم این نمیتونه اونجا برسه تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون کجا به توی طریق از خوزر قوانی کرد دفرمید آقای دو ترمه ها میدید تلخشم یه در میخانه ترف اکسیر است اکسیر که در زفنهای فرنگی هم بهش میگن الیکسیر یعنی ال اکسیر. الیکسیر یعنی ال اکسیر. اصلا کلمه یونانی است و به معنی اون ماده است که وقتی بزنن به فلز در حقیقت کیمیا ماده است که فلزی تبدیل میکنه به زر به اعتقاد خودمان البته بعدها برای چیزهای بسیار گرانبها ها مثل مثلا داروی که زودی مهده رو معالجه کنی. یا دنبال این بودن زمنا کیمیاگرها فکر دردن که اگر کیمیا رو به دست او جوانی رو هم میتونه برگردن یا تمام بیماری ها رو هم میتونه معالج کنه در کتاب بدایه الوقایه که بسیار بسیار کتاب است میگه که در دوره سورتانوسین بایغراق شده بود خبر شده بود که یه برویشی هست که این اکسیز داره کیمیا داره و آمد یه مقاری هم درست کرد حالا چجوری خلاصه باید کلا داشته چطور کرد نمیدونم میکارهایی کرده بود بعد میگوید که گفتن چرا که بیش از این نمی گفت یه مقدار مختصری که باقی مونده اینو برای معالجه پادشاه میگردشتن سلسانسانی باید قرار پاش درد میکرد، نگرس داشت و معتقد بودند که اگر اکسیر پیدا بکنن و این رو به دستوری که داده بودند برن تو همم و اونجا رو گرم بکنن روغن به بعد این اکسیر رو به مالانون درست کنن این بیماری رفت شد هر حال اکسیر نه فقط مصر رو تلاه میکرده بلکه خیلی کاری که هم ازش برمیمده به همین دلیل الان دواه ها رو بسیاری از ها رو که مثلا میخوام تبلیغ بکن که این دواهی مؤثریست لقب الیکسیر میذارن به دوش یعنی الیکسیر برحال ترفه یعنی چیز خیلی جالبه توجه ترف به معنی به چشم چشمی گردیستم ترفه یعنی چیز چشمگیست چیز قابل ملاحظی ارد کردیم که اینجا هم این قزل اصلا ارخانیه بنابراین میخانش هم مراد همون خانقاها و مسائل ارخانیست میگه گدایی در میخانه طرف اکسیریست اکسیر قابل ملاحظیست گر عمل بکنی عمل دوتا معنی غیر داره یکیش به کار دولتی کار دولتی رو میگفتن عمل عمل دیوان کردی یعنی کاران دولت و عامل یعنی کاران دولت یکی هم کارای کیمیا رو میگفتن عملی اینجا گرین عمل بکنی خاک زرقوانی کرد مراد همون فیلانفالات عملیات مربوط به کیمیا گرید یکی دیگه عمل اصطلاح موسیقی است. حافظ داره مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حریفان جهان را موج خوند پالا بود. عملی میپرداخت این عمل معنی همون دستگاه موسیقی یا ترج کار یا نوازندگی برحال اصطلاح موسیقی است. اینجا گر این عمل بکنی خاک زرتبانی کرد عمل و عنی فیل انترال کیمیاگری است و چون صحبت تسبب است و اینا اینجا خاک توان کرد معنی مجازی داره یعنی از از هیچ یا آدم ارزش که از از سفره تبدیل میشه به آدم خیلی درجیه که مهمی مراد از خاک و مراد از زر خاک یعنی معنی حیبی خودش مییند معنیش آدم غیر کامل و آدم هیچی نفن و بیارزشه و در مقابلش آدمی که کامل شد و واسط شد من درست نمیدونم خب این, این اصلا نیست معمولا مصر رو بیشتر کیش می تلا به دلیل اینکه رنگش اینا هم تر بوده و به همین دلیل مصر رو کار میوردن و معمولاً فلزات دیگر رو گفتن تبدیل به نقره میکنن حتی جیبه رو بهش میگن سیماپ یعنی نقره مایع سیماب و دیگه یه قواهی دارن خودشون معمولاً برای کار تبدیل طلاب مصر کاری بله دیگه گفتم برای مالج ناخوشیم هم کیمیا رو کار البته اگر کسی میداشت که هرگز کسی نداشته خداحافظم معتقده که کیمیا نیست میگه وفا مجویزه کس بر سخن نمیشنه بی به هرزه طالب سیمار خوی کیمیا میباش یعنی پی خودی زلبرتر باشه خودش عویده که کیمیا وجود داره ولی اگر کیمیایی باشه بهتر آدم صرف گران گرامهاتر بکن دیگه مرازی مثل مثلا اون بابا نباشه که می‌ره شکرد پارو گفتن مرد که مرکه, اه, روز به اصطلاح که اگه خط میگیری صبح سهر و هوا تاریک در اخوات آب باشی جارو کنی حضرت خز رو می‌بینی و هر مرد داشته باشی بهت روز آب جارو کرد. روز چهلم مشغول آب جارو بود که مثلا فرس که مشتاقی بقال با را همه اینا داره میره حال استوب زود سلام تو گفتش که حال چطوره مشترگی و گفتش که تو چیکار میکنی اینجا؟ هیچی؟ ایچی گفت تو سهر این زودی چرا بلنش داره خونه را آب جارو میکنه با رو بخوان بگی نبخواست بگیر با رو بخوان اینا اسرار کرد بابا اسرار کرد تا بالاخره گفتش آره من چیزی من حت میگرفتم نظری کردم که چهل روز اینجا را آموزش ارم میکنم برای اینکه هست خزرویم. یه فرم آشناگی باقلدوم من هست خزدم هرچی میخوای از من بخوی تو باور کن سو اول سویی داستان من دست عجیب نگو تو نهال راست میگه من خزم هرچی مخدره تو با آشناگی عجیت من نکن برو فکر دزدان برات خیلی میگرست هست تو من خزم تو تو خزی بیل داستش متشکرم که خواهی از من فاید تو خود این ویله منو کم پارو. یادت هم میگه که اگه نیست ویله پنج توانی شد پاروی دو تانی. ویله سپرد حالا <تصفح> بله این است که آدم نباید دیگه گای کیمیا پیدا کرد که ویلهش نباید پارو کنه که گذاری در میخانه تورت اکسیری است که این عمل بکنی خاص زرد باقی کرد. دل آ، زنور لیازات اگر آگهی یا بی تو شم خند زنان ترک سر توان کرد اولا نور رو با شم توجه داریم و این که فیتیله شم و که میزدن نورش یاد میشد دیگه تو شعر منوچهری هم هست که چون چوی بیمار بهتر گردی از گردن زدن فتیله وقتی دراز میشد شمای پیهی که به کلی اصلا پاسد دود میکرد که کسافت و یه بد و حتی شمایه اشرافی که با موم میساختن و اینا اگر فتیلش بلند میشد بعد میسوخت و ناراحت بود باید یه مقداری از این رو بزنن تا درست میشه اما اصلا اساس تصور که بین تمام ملل دنیا هست این مسئله که هی صحبت کردن که این از کجا اومده و ایه گفته, از چین اومده و ایه گفته, از هند اومده و ایه گفته, از مسیحیت اومده و ایه گفته. مال خود اسلام و یکی گفته که در ایران قدیم بوده و نمیدونم همه این حفه درسته یعنی همه جا بوده اساس قضیه اینه که شما اگر ما روی یه خواست نفسانیتون بذارین بعدش لذتی حس میکنی مثلا شما یک بعد غذا داریم گشت نتونم هست میخواییم این وعد غذا شد سام اگر یه آدم رو گشت برسه خب شما خودتون بخوریم ولی اگه بتونید اثر این یه وعد غذا بگذارید و این رو به او بدید و خودتون گرست ندخوابید در اثر این کار درستی گشت نگید ولی یه حض نفسی براتون پیدا فکر می‌کنن که اولاً من کنستم پاروی خواست خودم بذارم یعنی اون حوست رو مهار کنم دوم اینکه یه آدمی رو که احتیاری داشته گشنه بوده سیرش کردن اینا تا گذستن اون چیز یه لذت می‌ده من یادم از خیلی جوانی به خاطر دارم که یه آقای خوازی دیوان کشور اندیکا بود این هم در ایران و اونجه ها مثلی دوگلاس اسمش بود بعد رفته بود کنیدان و اینجا ها و بعد یه کتابی نوشته بود گذش که من این کتاب رو ترگیه می‌کنم به علی بعدم توضیح داده بکنی علی یه بچه شکونی بوده سیفان بوده بچه یک چند ساله که من چی شده بودم من شده بودم و تو گیاغون و تشنه و گشنه و بدلست رو مشرف و موقع بودم قصده چند روز راه رفته بودم و نه خوابیده بودم جایی نداشتم به این بچه بچه مثلا ده در 14 ساله در پسر بچه ایرونی میگه که زبون خود و مردم رو شهرم تا چه برسو زبون منو که گفت بدون اینکه ما هیچ ارتباط زبونی یا ذهنی بتونیم به هم چیز رو یه یک کلمه اصلا چیزی منو بفهمه گفت قضاشو من داد نوسابهشو اگه آبی داشته شیری داشته بیاغذ هر هرچی بوده گفت اونا رو به من داد و چادری داشت که فقط دا تا سر زانوی من نمیگرفت اون چادر داد به من که من اون تو بخوابم و خودش رفت رو گوشنه تو افتاق نشست این بچه خوب خوبی کرده قبول ده. ولی فکر میکن که این شخصم خودش از این تااریکی کرد لذتی نبدهحتا برده دیگه درست این همون لذت است که آدم وقتی مهمونی میکنه زحمت می که شما کمرش خ میشه روزها اون دنبال تهیه و تدارف و بیا و بعد خدمت بکنه و بردار و بزار رولار ب این اگه لذتی هم نداشته باشه یعنی فقط همون باشه که آدم باید انش اک داشته باشه این کار بکنه بنابراین یه حذه نفسی هست اساس کار تصور همین است که میگه آقا تو اگر از تر مراد نفسانی برخیزی یه لذت دیگری در انتظارت هست این اساس کار غذیه است و تمام ریاضت و تمام ترک و تمام اون مطالب که پیران تصوفیدن همین به می رسه که تو میتونی ارادتو ماهر کنی حوثاتو یه خود زیر چیزی خودت بگیری یه جنبه انسانیت و آدمیت تو به چربونی جنبه جنبۀ انسان این اساس قضیه حالا اینو کاجمی فرمود که دل ز نور ریاضت گراگاهی یابی یعنی این ریاضت دلت رو روشن می‌کنه دل ز نور ریاضت گراغهی اگر بفهمی این،, این لذت اگر ببری چشم خنده زنان ترکستر توانی کرد شم اولا این شعلش که بالا پایین میره یه حرکت اینو به خنده تشبیل کرد. و همین یه جام می شم اگر زان لب خندان به زبان لافی زد بازمال حافظه بارها آمده این حرکت شعله شم به خنده تشبیل می کنه. میگه که اگر از نور ریاضت آگهی پیدا بکنی مثل شم خند زنان ترک سر میکنی برای که شم که وقتی ستاره که تونش بر می نورش اصلا دهترم ولی ولی تو طالب معشوق و جامعه میخواهی تمام مدار که کاری دگر توانی کرد توضیحی ندارید گر این نصیحت شاهانه بشنبی حافظ این شاهانه رو برای اون شهره ها برده گر این نصیحت شاهانه بشنبی حافظ به شهره حقیقت سفر کنند یکمی حالا چیز بفرمید که نخصی کازی تا چمن، به چمن،, آبا چمن. به آسیان در شکن توریه شمشاد نکرده. شاید در پیک سباه از توپی در پیک در در پیک از در پس از این حرکت زن که چاله تر از این حرکت باز از چه چیزی بهتر است؟ از چه چیزی بهتر است؟ از چه چیزی بهتر است؟ از چه چیزی است؟ از چه چیزی بهتر است؟ از چه چه چه از از اینجا نسخه خانداری را اجاز اون نسخه شون حالا خب باشه این دو نسخه نگاه میکنم بیدیم ارز کنم که این از غزالایی که چند نزول داره کامله، پیدا هست که بابایی دوست حافظ، احیانا کسی که خیلی بهش معتقد بوده میه به سفر و خداحافظی هم نمیکن و حافظ خیلی از این ماجرات دلپورد بوده در زمنم اون آقا خوالاً آقا مثل که مقام بالایی داشته اینکه گله میکنه در کمال ادب از این شرط و مطلب مطلب اصلا این کاملا فیده است حالا این که بوده و چه بوده خبر نداریم اما خیلی مطالب جالب توی این،, این غزل هست و توضیح میدم اولش میخونمش یاد بادان که زما وقت سفر یاد نکرد به ودای دل غمدیده ما شاد نکرد آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول بنده پیر ندار من آزاد نکرد تا از این جامعه به خوناب که فلک رهنمونین به پای علن داد نکرد دل و امید صدایی که مگر در تو را سد کرد در این پور که فرحب نکرد سایه تا باز گرفت دیز چمن مرگ سهر آشیان در شکن توروی شمچاب نکرد شایه در پیک سبا از تو بیا منزد کار زن تو چالا کرد از این حرکت باز نکر. کلک مشاوتی سن اش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدن حسن خدا داد نکرد مطربا پرده به گردانو بزن راه هجاز که به این راه بشد یارو زنایات نکرد ازالیات تازلیات سنگ حافظ که شنید این راه برزوز. که فریاف کنم که پرده به گردان حالا این توضیح بد میرن از افر پرده به گردان رو بزن راه هجاز که به این راه بشد مثل این که اون مندوه خاجه رفته به حج مطره به پرده به بزن راه هجاز که به این راه بشد روز ما یاد مده ظاهرم حالا یاد بعدان که ما وقت سفر یاد نکنیم پیداست که این رسم خداحافظی که الان هم معمله با اگر کسی خداحافظی نکنه یا یادش بره یه دوست رو گله میکنن که تو رفتی و خداحافظی از ما نکردی این رسم خیلی و فوجا اینجوری گله میکنه که رفت و ظاهرا دوستی هم داشته و جدا هم یاد بادم که ما. یاد باد یعنی او از ما یاد نکرد ولی ما یاد او می‌کنیم. یاد باد آن که یعنی آن شخص که زما وقت سفر یاد نکرد به بدای دل غم ما ساعت نکرد خوضی زیادی نداری آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول بنده پیر ندادم جز آزاد نکرد این بیت خیلی توی رو توی کاشان دیدم آنان جوان بخت بنده پیر رو آزاد نکرد پیر و جوان چه قابل دیده اما رغم خیر قبول این چی آن جوان باخت نمی زد رغم خیر و قبول رغم خیر قبول ظاهراً، شاه یا که بندگان بسیار متعدد داشته بعد هر سال، وقتی که موقع بزل وقتشش بوده به مناسات جشنا، به مناسبت ایتها و همسال اینا صورت بنده هایی که بله خب بنده وقتی آزاد شد خب خیلی برایش خوب دیگه صورت بنده هایی که باید آزاد بشه میوردن به عرض می به عرض اون بعضی یا اون شاه یا اون خاجه یا اون پولدار. بعد این صورت و بعضیشون میزده خیر یعنی آزاد نشده بعضیش هم میرمشده قبول یعنی آزاد نشده رقم خیر و قبول یعنی رب کردن و تصمیب کردن آزادی بند آن جوانبخت که میزد رقم خیر و قبول میگه برای من چرا خیر بنده پیر نده آنمزه چه آزاد نکرد چقدر زیباست اون جبان وقت که میزد رقم خیر و قبول بنده پیر نده چه آزاد نکرد این جامعه به خوناب بشود میگم میگن که جامعه کاغذی تنشون میکردن برای تظلم برای شفایت کردن من خیال نمی کنم که لواسی سرتاپا و افتین و نمی دارم قبا و این حرفا شاید یه چیزی مثل لکارت مثل پوستر دو طرف آویزور می کردن احیانا و این رو می گفتن از این جامعه روش هم با خط درشت می به دلیل اینکه اون اون کسی که به مظلمه و به شکایت برسه از دور ببینه در 4 کلمه 5 کلمه می می‌نوشتم. این رو هم ظاهراً با خط سرخ نوشتم. که کاغذای شکایت تا اون جایی که هست که در مولانا هم این جامعهای کاغذین آمده و جاهای دیگر همه جا صحبت اینه که این این کاغذ سرخ شده. همینجا هم میگه که از این جامعه به خوناب بشویم خون سرخه این باید تناسبی داشته باشه که خارج میگه که از این جامعه به خوناب بشویم بعد تمام اینتظامی که دعاتهایی داشتن و شفایت داشتن اینو میبردن زیر علامتی، زیر یه جایی همونجوری که برای همه کارا بوده بستهای اسمی این علامت سینزنی. و یه وسیبه دیگری بودی که بهش توخ میگفتن ترکی پا توق این توق و نصف میکردن که اونم یه علامت بلندیست شبیه علم این توق رو نصف میکردن که اشخاص بیان اونجا بعد پای این جمع می‌شدن اونجا رو میگفتن پا حالا محل راندهو، محل گرد محل خیلیم من هم نگره دیدن شده پاپو. ولی اصلش توق بوده است و این توق وجود داشته و من یک کتابی دارم کتاب بسیار بسیار جالب است. دونه دونه خونه های محله های تهرون در 150-60 سال پیش دونه دونش رو اسم بود در محله چند تا قیابون داره دیابون ها چند تا کوچه داره، تو کوچه چند تا خونه هست، خونه ماله کیه، چند نفر هستم، چیز آهاره بلواطه اسما و شغلات تو هر محله چند تا مشاقل هست، چند تا دوکون نوبایی است چند تا دوکون قربخونه است چند تا نمدونه هم قصدابی چند تا پیندوزی و امثال اینا و این مال قبل از 1286ه برای اینکه 86-85 ۸۶۶ و ها که در یه سالی بود که ناصرینشوها دستور داد تهران رو بسعت دادن. قبل از اون دروازه شمرون اول پامنار بود یعنی از پامنار بیرون شهر بیرون روز بعد دروازه شمرون رو برداشتم بردن جایی که الان معروف بود دروازه و از هر طرف شهر رو به همین تبدیل توسعه دادن و علاوه در اون سال چهار در تا دروازه بیشتر نداشت، چهار تا محله داشت. محله اود لاجان بود و محله بازار بود و محله چال میدان بود و محله سنگلک. چهار تا محله بعد هر کدوم اینا رو گذرها داشت و پاتوخ ها، و هر کدوم این پاتوخ ها دست به آدم سپارتیز رو به و اینا رو همه رو دونه دونه اسم برده که فضولدار پلا ملکیه کجا هستش خیلی جذبیات بسیار جالبی کتاب به نام آمار دارالخلافه هست نیسی که اسمش را اون خانم خانم منصوره اتحادیه، منصوره نظام وفی، اونا چپ کردن اینجور بگوار زیادی اسمه که اون اسما برای نگاه کردن خیلی جالبی، شده خوب تست حتی اسم بعضی مشاغل هست من الانم هم که اینجا خدمت رو اصلا نمیدونم نه چیه لندره دوزی یکی شد لندره دوز ما الان نمیدونم چیه و تهنی میدونم نکردم تنبلی کردم ولی یه چند تا شغل دیگه به این تحکیم هست شغلایی که اون وقت در تهرون وجود داشته و من اصلا نمیدونم چیه هست چیزای دیگه از این لحاظت داره خیلی جالبی به هر حال توک و پاتوک و علم ارض کردم یه نوع مثل پس علامت، یه جور دیگه علامت خوبه عرض کنم که این علامتی در سینه زنی هم علامه باز برای جمع آمدن یعنی می بردن یه یه جای معین حال فهلمان در بسید رو این آواخر، این اواخر در سال پیش می بردن تو محچه تاخدوله سر طیابون پهراباد و سینه زن جمع شدن اونجا از اونجور بنابراین دعاتخواهان هم می پای یه علم اینجا نگاه می داشتن تا بعد به کارشون بسید می گه که از این جامعه به خوناب بشنگم که فلک رهنمونین به پای علم داد نکرد دارن یه علمی بدون نام علم داد همینه بله یعنی شکایت یعنی شکایت نامی بله مسلم مسلم ارز کنم که دل به امید صدای که مگر در تو مگر غیر تردیده یعنی شاید دل به امید صدای که شاید به تو برسه ناله ها کرد در این که فرهاد نکرد روشنه دیگه باقیش بقیقه اون شایده و میگه دل ناله کرد ناله کرد برای اینکه امید داشت شاید این اکاسیس رو گوشی که دل به امید صدایی که مگر در طور سطح نالها کرد در این طور که فرحات نکرد هج داره میره هج داره میره نه یکی از بزرگاه اینا باید باشه شرخیزات فکر نکنه برای اینکه از پاتحان ایران در اونجایی که من میتونم هیچ کسی هج نرخیه و مرهوم محمد رضا شاه وقتی رخته بود مکه که رخته بود عمره و به حج نبود بعد استاد من مرهوم بدی و زمان هم, هم بود و اونجا گفته بود که علا ازاد اولین پادشایی هستند که که اول درم و کنم که بعد دنبال این در حقیقت محاد بگه که وضع ده اینا دیگه تعریفی نداره بعد اینکه تو رفتی سایه تا باز گرفتی چمن مرگ سهر آشیان در شکن توریش روی نکرد یعنی همه چیز به هم پرده قایدتاً مرگ سهر باید در توریش روی آشیان آشیان میداشت ولی از وقت تو رفتی دیگه نکرد این کارو بعد هم میگه خیلی سریع رفتی تو که بی خبرم گذاشتی در یا در پیک سبا از تو بی آموزد با که چالا کرد این حرکت باید نکرد تا ما خبرزیدی نبودی شا... چیزون میگه وقتی تو از شیراز رفتی دیگه مرغ سهر نرفت تو شمشاد آشیان بکن یعنی همه چیز هم خودم شاید در پیک سبا از تو بیاموزد کار زن که چالاخ کرد این حرکت باد نکرد یه سبا باید گرم روی و سرعت سیر رو از تو این شاید یعنی شایسته است درست قعده الان شاید رو به صورت قید تردید بکنید این شاید یعنی ممکنه بشه، ممکن نشه، اینجا اون نیست، فعل مزارع از مستر شایستن شاید یعنی شایسته است و قطعاً باید در این قبیل آورد طوری خوند که معلوم بشه این فعله در سعدی هم هست، میگه گروه سرپنجه با شایت، میکشم می هزار شایت هزارشتی شایت بخونه خیش مستجر یا مثلا به قطلم گردی دو دست موزنیم شاید به خوش همی او ز دست و پنجی خاطر یا باز میگه که مردم هوشیار از این معامل دورم شاید اگر ایده موزنم که نستیم خلوت به روی خل از همه باز آمدیم و با تو نشستیم هرچه بود بریدیم وانچه نپیمان بود و شکستیم مردم و حشیار از این معامله دورند شاید اگر عیب ما کنند یعنی حق دارم اگر دید شاید در پی که سبا از تو بیاموزد پا زن که چالا پر از این حرکت باید نکرد کلک مشاته سنش مشاته یعنی آرائش کرد مشتاته سون یعنی بل یعنی قدرت خدا میگه قلم مشتاته سون نقش مراد نمیکشه برای کسی که اقرار به حسن خدا داده تو نکرده مرادش این است که کسی که از تو سپاس بذار نباشه و نیکی های تو رو به یاد نداشته باشه به مراد نخواهد بسید منطقه این رو به نیکوتر صورتی به زبان شاعرانه بسیار بسیار زیبا بیان کرده کلک اصلا به معنی نهی و قلم هم میدون که یه نوعی نهی بوده و همین دلیل بعد کلک مجازن معنی قلم هم به کار و هم قلم شین رو میگن که نهی نیستی نیشیکر هستی که قلم نهی نیستی نیشیکرین و که مشراقه سنش نکشد نقش مراد هر که اقرار به حس حسن خدادار نکرد مطر با پرده بگردان اینجا پرده میدونید که اون زه هاییست که دسته ساز می‌بندن، برای اینکه نوت‌های مختلف وقتی بخوان بزنن، استاد بهشن می‌گه. مثلا از گام دو اول دور رو می‌خواهی بزنی، دست کجا بزنی؟ گاه دو همه دوبار می‌خواهی دو بزنی، دست کجا بزنی؟ همه دوزنی، ای الافه. اون زه‌هایی که بسته میشه، اونا رو پرده. و بعضی شاش‌ها هست که پرده نداره کمونچه و بیولون پرده نداره. و باید هنرآموز خودش جای پرده رو همجوری بدونه بدون اینکه چیز ولی دسته سال پار چون بلنده و دست از پایین تا بالا حرکت میکنه دیگه نمیشه مثل دسته بیولون که همون باره فقط پرده دارش نذارن که پرده میذارن برای اینکه بتونه بفهمه و نوازندگان بسیار استاد جایی برای نوازند پرده ها رو باز میکنن آقای شهناز خودشون میگفتن که من یه شب تر کلانجا من کجا خارج کشور نزارم کنسپت داشتن و پرده های سازشون باز کردم سازی کازر یکتن زدن برحال پرده اون سه که به دسته ساز بسته میشه ولی اینجا که میگه پرده بگردان یعنی کوک و تغییر بگیر کوک و عوض. مطربا، پرده بگردان یعنی پوک سازت رو عوض کن برای اینکه راه حجاز بزنی راه هم به آهنگ مطربا و چون زدن به معنی و در ضمن راه زدن به معنی دوزگی و قهارتگری حافظ اینا رو بهاش اکروبات کرده میگه چه راه میزند این مطرل مقام چناست؟ ظاهرش چه خودم آهنگی میزنی؟ در این حال یعنی این مطرلی که مجلس م... مقام هم اصطلاح موسیقی اسم این آهنگ چه راه میزند این مطرل مقام چناست؟ یعنی این مطرلی که آهنگ موسیقی رو خوب میشنست چه آهنگی داری یه معنی دیگرش هم این است که این مطربی که نبز مایلستود هسته چه؟ چطور راهگین و دل آدم میزن؟ که در میان غزل قول عاشنه آورد. باز غزل شعر عوض بوده، قول شعر تصمیف بوده، تصمیف رو وسط آواز میخوندن. که در میان غزل قول عاشنه آورد. یه معنیش است که وسط عوض تصمیف مناسل و را بود. یه معنی دیگر چند این است که در میان غزل گفتار دوست و پیغام دوست و ردوادت چرا میزند این مطرب مقام چناست در میان غزل قول آشنا محجزه است برحال مطربا پرپپ گردان بزن راه اجاز. چرا که از این راه بشد یارو و زمایات پیداست که رفته بوده به هجاب بوده به حج نه نه اون که این همونه برحال همونه اسم اینه جناس در صورت ایست که دو تا لفظ باشه شبیه هم به دو معنی جدا هستند این همون چیه؟ همون هجاز رو اون آهنگ موسیقی هم که اسمش حجاز برای اینکه شبیه به آوازی که اهل اجازه میشد این نیست اینجا اگر مثلا فرض اون که شیر و شیر رو گردار بیاره یا سیر و سیر رو بیاره یکی سیر زرد و یکی سیر در محالتی هست اون میشه جند ولی این هم یکی بود که فرض بگردن بزن راه اجازه که از این راهش شد یارو ن نکرد ق لدیات رغی است روز ها اولا عراق ناحیه بعد از جوال ال الان هنوز مردم گیلان مردم این طرف پول رو که اغلی من به کلی عوض میشه می که گیلان و مازندران و گردان ناحیه مدیترانه ایست ثبت بارون زیاد هوا با و هوا هوای محسوس خودش که خیلی بلنده، جروب و حراب میگیره نمیذاری بیاد اون خوشت شما از این کونت رد بشید، آبه هبا به عوض بشید خوش میشه و آبه هبای بحریه چیست، مثل این قسمت رو، یعنی این روی کوه رو، سمت دامنه جنوبی کوه الورز رو بشمیدن عرب و اراغین بوده در قدیم. یکی عراق عجم و یکی عراق عرب. عراق عرب ناهیه بین نهره نهرین و همین جاییست که الان چیزی دیشه. اراغ عجم عبارت بوده است از تهران که اون وقت هنون شهری نبوده چیزی نبوده. شهرهای مهمش قوم بوده است و اسفحان بوده است و تا مرز فارس رو می گفتن اراغ. والا گاهی عدوشون در اختیار یه پتچه بود ولی دو تاشون اراقه همی دیگه بله ساملا جده. جده. جده. جده نه و این در شعر سبک اراقی که میگویند یعنی سبک شعری که اول در نواحی مرکزی ایران به وجود آمد سبک خراسانی سبکیسی در شرق به وجود آمد در همون نهای اول از بخاره شروع شد که خیلی شرقه بعد قزمی باید کم کم باید جلوتر بلی از دوره سلجوهی مرکز امریکت اصفهان منتقل شد در تا هم دوری که ایران تو از اون طرف سیون جیمون میرسید و از این طرف دریای مدیترانه در دوره البرسران و ملک شاینا ایران به این واسعت بود مرکزش یعنی پایتختش استان و کم کم شعر آب و رنگ مردم این ناهیه رو خودش گرفت یعنی از اون درشدی و فخامتی که مثل سوتون های دخت جمشید بود درشد و و اینا تبدیل شد کار خاتم تبدیل شد به نیاتی. یعنی شیرین و روان و همین چیز که شعر صحبی حافظ هم. این است که حافظ خودش روی سروده های خودش میده اینا قذریات اراقی البته اراق فسقا موسیقی خاصی هم بازم هر اسمه دیگه اسم این دو ناهی من این چه اصلا معنی داره یا نه الان نمیده به معنی داره هیچ اسمی نیست که معنی نشتر بشه. منتها بعضی اسمها هست که ما معنیش هنوز می‌دونیم. بعضی اسمهای دیگه هست که از بس که به صورت اسم به کار رفته، دیگه معنی اصلیش رو فراموش کردن. و الا نمیشه یه لفظی اسم،, اسم کسی یا جایی بزنن که این معنی نشتر بشه. نمی‌چن. مثلا فرضشون تهران یعنی جای گرمی. شمران نمید جای سرکی، جای پنکی. ولی اینو مدت ها مردم نمیدونستن تا معلوم که و الاخره یه, یه،, یه رسالهی نوشت به نام نام های شهرها و ده های ایران و اونجا پیدا کرد. اولا گفتش که تهرام و تهرانو، و تهران و اینا همه یه چیزه. بعد سمیرام و شمیران و امطال اینا هم یکیه. بعدم هم بر خود رو هواش همه این اینا هوا خونه که جنبه یه علاقی داره اون یکی هواش همه جاهایی هست گرمه اینا رو درست و این معنی رو پیدا کرد ولی نمیدونستم نمیدونستم خب اینجا تهران تهران یعنی چی؟ یعنی هم اینی که عراق هم من الان نمیدونم نمیدونم که معنی میشه پیدا کرد در کتبهای لغت یا خیرسایت بشه ولی من الان معنیشون نمیدونم. وی ربطه داره اینکه عراق جمع عرق نمیشه این جمع جمع مکستره جمع مکستر مال عربیست مال فارسی اگر نه اون عاق اون عاق که به کلی پساونده اون که ایچ شبا میگه جمع عرق عرق جمعش عراق نمیشه عرق جمعشه عرقا و فارسی یک دوبام این که من عراق ندیدم در مصنعی قدیمی شاید بوده خیلی قدیم، ولی من ندیدم آقای دوتر محمودی شاید بیشتر بدونم از تنبال کار پهلادی اینا هستم نمیدونم که یا نه به هرحال من عراق ندیدم تنها کلمه عراقی که دیدم به این صورت کلمه است به معنی یه نوع درخت که چوب محتری داره و توی همین حافظم آمده قیس علومک انزل عراق تا ایرو خیره یه ای شعر عربی حافظ آمد از عراق به نظرم اسم اون درختیست که چوب مستقا که اینا از اون میبردن بعد حالا عراق رو عراق کردن یا نکردن و اینم به کسر قطعا برای اینکه خود عراق عرب هم در این چه میتونم عراق اگر, اگر عبود این رو سن عراق بر بله، بله، بله قزلیات اراقی است دروده حالا قزلیات تازه برای من مشکلتن از باقی چیزاست برای اینکه قزلیات جمع قزل میست قزل جمعش مثلا تراد بشه اقزال حالا من نمی‌دونم با توی فرهنگ عرمی بکنم قزلیات جمع قزلیه است از ادبیات از که کلمه ادبیات اصلا ادبیات کلمه است که در ترکیه ساخت یعنی در دولت عثمانی ساخت الان میگن ادبیات ولی در تمارک عربی هیچ کدوم اصلا ادبیات نمیگن میگن ادب آداب. ادب دانشکده ادبیات میگه کلیه ال آداب همچنان شده ادب کلیه ین یعنی دانشگاه آداب هم جمع آداب. تاریخ آداب عربی، این یعنی تاریخ آدابیت عرب، تاریخ آداب لغت عربی، مال یعنی تورج زیدان. یعنی تاریخ آدابیات زبان عربی آداب، آداب و آداب. حالا آدابیات جمع آدابیات، آدابیه مراکب از عدب و یه یه نسبت و حی علاقه به محننسی ما در فارسی که مزاکر محننس ندیم این حی سرعتمال عرب این یه نسبت هم در فارسی مشهدت نیست در عربی تشکیم یعنی در پارسی تهران چه تهرانی در عربی دیگه میشه رجلون تهرانی بیون. تهرانی بنابراین این عدبی یه لغت پارسی میشه لغت پارسی میشه عدبی برای که مزکرمان هست که نداریم یه اسفاته هم در فارسی مخففه ادبیه میشه ادبی جمعش هم ادبیات میشه ادبیات دیدانی حالا قصدی چی بوده این ادبیات صرفاً نیرسی مثلا فرض کنیم که مباحث ادبیه یا بهتر میگم فنون ادبی فنون ادبی یعنی دانش‌های ادبی چون فنون جمعه، جمع موکستره. جمع متکثر جمع متکثر در عربی مؤنث حساب میشه بنابراین فنون ادبی که علوم ادبی می‌گن اون رو اون با فنون چون مؤنثه اینجا به نمیذارن تو فنون ادب بعد کم کم این راسته شده ادبیات جمع شدن تو ادبیات و اول باری ظاهرن تا آنجه که من دن که لحظ ادبیات در شهر کلاستیک بارسی آمده در میوان ایرنج خلق از ایرنج من ندیدم، شاستون نشکونی شمال میدونم بارسید ایرنج میگه در تجدید و تجدید باشد، عدبیات چلمتی باشد، در اون انقلاب <تصفيق> عدبی بنابراین من خودم ادبیات با این که دانشگری که درش درست ندن اسوش از دانشگری عدبیات و علوم انسانی امسانی ولی من ادبیات نمیزن مثل ادبیات و پاسی عدبیات نمیزن به عدب دیگه هم کاری نگیرم شاید شاید بعضی را فکر کنم که خوب نست غزالیات جمع غزالیی هست غزالیی هم عین همینه یعنی صفت نسبیست میتونیم مثلا بگیم که چه می‌دونم واسه اشعار غزالیگیه بعد جمع شده غزالیگیات به غزالیگیات مونده که صفت نسبی جمع محصوفش حضر شده شده غزالیگیات و حالا غزالیگیات سعبی غزالیگیات و حافظ غزالیگیات نمیدونن شاید رقص طبیلی الى آخر اما کلمه پدر مادرداره به دلیل که تو که هم آمده سازیات عراقی است سرگافس چه شنیدین راه دل سوز پس راه معنی موسیقی است آهنگی موسیقی که چه هست که شنیدیم راه دل سوز که فریاد نکرد این استفهام انکاری است معنیش این که هر کسی این راه درسوز رو شنید پریاد کرد این معنیش خب اگر سوالی چیز داریم بفرمایید باید بریم سر غزل دیگه و پرست خیلی نداریم دوستان هم هنوز همشون نیمدن و همین دو غزل اعتفادم اگر سوالی هست رو چی؟ نمیشه باید سون یعنی صفت، سانه تسان، سون سانه یعنی سازن. بله بالی، بالی نظر اونجا نظر هم البته باز به, مع... به معنی کسی که هم معنی به اسطلاح مجازی داره که نظرباز معنی آدمیست که چشمش دنبال چیز زیبا میگرده البته بنده هم وفقه آدم چیز زیبا بگینه بهتر از این چیز زشتی من جوان نمی که هیچ کسی با من در این زمین محلق باشه علی خب در زم نظر بازی و ارفانی هم داره اینکه میگه در بازی ما بیخبران حیرانند به دلیل این است که صوفیه چیزهای زیبا رو نشان کامل ستون الهی میبینند و در حضیقت استناد می به یه حدیثی که میگه الله جمیلون و یهد بل جمال خدا زیباست و زیبایی رو کنابرا این ستایش میکنن زیبایی و صوفیه این از سر نیست میگه هر کسی را سعدی خیلی گوشند این تفسیر میکنه هر کسی را نتوان گفت که ساعد نظر است عشقبازی دیگر و نفس خرصی دیگر نه ران دیده که بینن سیاه است و سپید یا سپیدید سیاهی بشه ناسد بستر است این پس نظر اگر از داره نظر پاک توانت رخ جانن دیدن که در آوینه نظر جز به سطا نظر این خیلی زیاده. بنابراین در نظر بازی ها بی خبران حیرانن نفسو چونه که ما اگر نظر بازی داریم که که خبر ندارن این حمله به چیزای ندرست میکنن ولی صحیح